مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد وحی کردن حق به موسی علیه السلام که ای موسی من که خالقم تا تو را دوست میدارم گفت موسی را به وحی دل خدا که گزیده دوست میدارم دارم تو را گفت چه خصلت بود ای کرم، موجب آن تا من آن افزون کنم گفت چون طفل به پیش والده وقت قهرش دست هم در وی زده خود نداند که جزو دیار هست هم از او مخمور هم از اوست مست مادرش گر سیلی بر وی زند هم به مادر آید و بر وی تند از کسی یاری نخواهد غیر او اوست جمله شر او و خیر او خاطر تو هم ز ما در خیر و شر التفاتش نیست جاهای دگر غیر من پیشت چو سنگ و کلوخ گر سبی و گر جوان و گر شیوخ یا ایا در هنین در بلا از غیرتو لا نستعین هست این اییا که حسر را، در لغت ون از پی نفی ریا. هست که نستعین هم بحر حسر، حسر کرده استعانت را با قصر، که عبادت مرتو را آریم و بس، تم ایاری همز تو داریم و بس. خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفیع آن مغزوبون علیه را و از پادشاه درخواستن و پادشاه شفاعت او قبول کردن و رنجیدن ندیم از شفیکه که چرا شفاعت کردی؟ پادشاه بر ندیم خشم کرد خواست تا از وی برارد دود و گرد کرد شه شمشیر بیرون از غلاف تا زند بر وی جزای آن خلاف هیچ کس را زهره نه تا دم زند یا شفیع بر شفاعت بر تند جز اماد ملک نامی در خواس در شفاعت مستفابارانه خاص بر جهید و زود در سجده فتاد در زمان شه تیغ قهر از کف نهاد گفت اگر دیو است من بخشیدمش ور بلیسی کرد من پوشیدمش چونکه آمد پای تو اندر میان رازیم گر کرد مجرم صد زیان صد هزاران خشم را تانم شکست که تو را آن فضل و آن مقدار هست لابت را هیچ نتوانم شکست زان که لابی تو یقین لابه من است گر زمین و آسمان بر هم زدی زنتقام این مرد بیرون نامدی ورشدی زره بزره لابگر او نبردی این زمان از تیغ سر بر تو می ننهیم منت من ای کریم لیک شرح عزت توست ای ندیم این نکردی تو که من کردم یقین ای صفاتت در صفات ما دفین تو در این مستعملی نی عاملی زان که محمول منی نه حاملی ما رمیت از رمیت گشتهی خیشتن در موج چون کف هستی لا شدی پهلوی الا خانگیر این عجب که هم اسیری هم امیر آنچه دادی تو ندادی شاه داد اوست بس الله و اعلم رشاد، و ندیم رسته از زخم و بلا زین شفه آزرد و برگشت از ولا دوستی ببرید زان مخلص تمام رو به حایت کرد تا نارد سلام زین شفیه خیشتن بیگانه شد زین تعجب خلق در افسانه شد که نمجنون است یاری چون برید از کسی که جان او را واخرید واخریدش آندم از گردن زدن خاک نال پاش بایستی شدن باشگونه رفت و بیزاری گرفت با چنین دلدار کینداری گرفت پس ملامت کرد او را مصلحه جفا چون میکنی با ناسهه جان تو بخرید آن دلدار خاص آن دم از گردن زدن کردت خلاص، گر بدی کردی نبایستی رمید خاص نیکی کرد آن یار حمید گفت بحر شاه مبزول است جان او چرا آید شفی اندر میان لیم الله وقت بودان مرا یسع فیهی نبیون مجتبا من نخواهم رحمت جز زخم شاه من نخواهم غیر آن شهر پناه غیر شهر را بهر آن لا کردم که به سوی شه تولا کردم گر ببرد او به قهر خود سرم شاه بخشد شه جان دیگرم کار من سربازی و بیخیشی است کار شاهنشاه من سربخشی است فخر آن که کف شاهش برد ننگ آن سر که غیر سر برد شب که شاه از قهر در قیرش کشید ننگ دارد از هزاران روز عید. خود تواف آن که او شهبین بود فوق قهر و لطف و کفر و دین بود زان نیامد یک عبارت در جهان که نهان است و نهان است و نهان که این اسما و الفاظ حمید از گلابی آدمی آمد پدید. علم الاسماء بود آدم را امام لیک نه اندر لباس عین و لام چون نهاد از آب و گل بر سر کلاه گشت آن اسمای جانی روسیا که نقاب حرف و دم در خود کشید تا شود بر آب و گل معنی پدید گرچه از یک وجه منطق کاشف است لیک از ده وجه پرده و مکنف است گفتن خلیل مر جبرئیل را علیه السلام چون پرسیدش که علک حاجتون، خلیل جوابش داد که اما علیک فلا من خلیل وقتمو او جبرئیل من نخواهم در بلا او را دلیل او ادب ناموخت از جبریل راد که بپرسید از خلیل حق مراد. که مرادت هست تا یاری کنم ورنه بگریزم سبکباری کنم. گفت ابراهیم نه رو از میان واسطه زحمت بود بعد الایان. بهر این دنیاست مرسل رابطه، مؤمنان را که هست او واسطه. هر دلر سامع بودی وحی نهان، حرف و سوت کی بودی اندر جهان. گرچه او حق حقست و بیسر است، لیک کار من از آن نازکتر است. کرده او کرده شاه است لیک پیش ظعفم بد نماینده است نیک آنچه عین لطف باشد بر عوام قهر شد بر نازنینان کرام بس بلا و رنج می باید کشید آمرا تا فرق را تانند دید که حروف واسطه ایار غار، پیش واصل خار باشد، خار، خار. بس بلا و رنج بایست و وقوف، تا رهد آن روح صافی از حروف. لیک بعض زینصدا کرتر شدند، باز بعض صافی و برتر شدند همچو آب نیل آمد این بلا سعد را آب است و خون بر اشقیا. هر که پایان بین و مسعود تر تر و کارد که افزون دید بر زان که داند کین جهان کاشتن هست بحر محشر و برداشتن. هیچ عقد بحر عین خود نبود. بلکه از بحر مقام ربح و سود. هیچ نبود منکر گربنگری. منکریش بحر عین منکری. بل برای قهر خسم اندر حسد یا فزونی جستن و اظهار خد هم پای تام دیگر بی معانی چاشنی ندهد سور زان همی پرسی چرا این میکنی که سوار استو؟ معنی روشنی ورنه این گفتن چرا از بحر چیست؟ چونکه که صورت بحر عین صورتی است این چرا گفتن سؤال از فایده است جز برای این چرا گفتن بد است از چرا فایده جوی ای امین؟ چون بود فایده این خود همین. پس نقوش آسمان و زمین نیست حکمت کن بود بهر همین. گر حکیم نیست این ترتیب چیست؟ ور حکیم هست چون فعلش دهیست. کس نسازد نقش گرما با خذاب جسپای قصد سواب و ناسواب مطالبه کردن موسی علیه السلام حضرت را که خلقت خلقا و احلقت هم و جواب آمدند گفت موسی ای خداوند حساب نقش کردی باز چون کردی خراب نرماده نر ماده نقش کردی جان فضا وانگهان ویران کنی این را چرا گفت حق دانم که این پرسش تو را نیست از انکار و غفلت و از هوا ورنه تعدیب و اطابت کردمی، بهر این پرسش تو را آزردمی. لیک، می خواهی که در افعال ما بازجویی حکمت و سر بقا. تا از آن واقف کنی مرآم را، پختگردانی بدین هر خام را. قاسدن سائل شدی در کاشفی، بر عوام، ارچه که تو زان واقفی. زان که نیم علم آمد این سوال هر برونی را نباشد این مجال. هم سوال از علم خیزد هم جواب. همچنان که خار و گل از خاک و آب. هم زلال از علم خیزد هم هدا. همچنان که تلخ و شیرین از ندا. زاشنایی خیزدین خیزدین بغز و ولا، و از غذای خوش بود سقم و قوان. مستفید اعجمی شد آن کلیم، تا عجمیان را کند زینسر علیم. ما هم از وی اعجمی سازیم خیش، پاسخش آریم چون بیگانه پیش. خرفروشان خسم یک دیگر شدند، تا کلید قفل آن عقد آمدند، پس بفرمودش خدا عیز و لباب، چون بپرسیدی بیا بشنو جواب، موسیه، تخمه بکارند در زمین، تا تو خود هموادهی انصاف این، چون که موسا کشت و شد کشتش تمام، خوشه یافت خوبی و نظام، داس بگرفت و مران را می بورید. پس ندا از غیب در گوشش رسید. که چرا کشتی کنی و پروری، چون کمال یافت، آن را می گفت گفت، یارب، زان کنم ویران و پست که در اینجا دانه هست و کاه هست. دانه لایق نیست در انبار کاه. کاه در انبار گندم هم تباه نیست حکمت این دو را آمیختن فرق واجب میکند در بیختن گفت این دانش تو از کی یافتی که به دانش بیدری برساختی گفت تمیزم تو دادی ای خدا گفت پس تمیز چون نبود مرا در خلایق روح های پاک هست، روح های تیره گلناک هست، این صدف ها نیست در یک مرتبه، در یکی درست و در دیگر شبه، واجب است اظهار این نیک و تباه، همچنان که اظهار گندم ها زکاه، بهر اظهار است این خلق جهان، تا نماند گنج ها نهان کنتو کنزن گفت مخفیان شنو جوهر خود گم کن اظهار شو بیان آن روح حیوانی و عقل جزوی و وهم و خیال بر مثال دوغند و روح که باقی است در این دوغ همچون روغن پنهان است جوهر صدقت خفی شد در دروغ، همچون طعم روغن اندر طعم دوغ آن دروغت این تن فانی بود راستت آن جان ربانی بود سالها این دوغ تن پیدا و فاش روغن جان اندرو فانی و لاش تا فرستت حق رسول بنده دوغ را در خمرت جنباننده تا به جنباند به هنجار و بفن تا بدانم من که پنهان بود من یا کلام بنده کان جزو اوست در رود در گوش او کو وحی جوست ازن مؤمن وحی ما را باقی است. آنچنان گوش قرین دائی است. همچنان که گوش طفل از گفت مام پر شود، ناطق شود او در کلام. ورنباشد تفل را گوش رشد، گفت مادر نشنود، گنگ شود دای ما هر کر اصلی گنگ بود ناتقان کس شد که از مادر شنود دان که گوش کر و گنگ از آفت است که پذیرای دم و تعلیم نیست آن که بی تعلیم بود ناطق خداست که صفات او ز علتها جداست یا چو آدم کرده تلقینش خدا به هجاب مادر و دایا و عزا یا مسیح که به تعلیم ودود در ولادت ناطق آمد در وجود از برای دفع تهمت در ولاد که نزاد است از زنا و از فساد. جنبش باییست اندر اجتحاد تا که دوغ آن روغن از دل باز داد. روغن اندر دوغ باشد چون آدم، دوغ در هستی برآورده علم، آنکه که هستت می نماید، هست پوست، و آن که فانی می نماید، اصل اوست. دوغ روغن ناگرفتست و گهن، تا به نگزینی بنه خرجش مکن، هین بگردانش به دانش دست دست تا نماید آنچه پنهان کرده است زانکه این فانی دلیل باقی است لابه مستان دلیل ساقی است مثال دیگر هم در این معنی هست بازی های آن شعر علم مخبری از بادهای مکتتم گر نبودی جنبش آن بادها شعر مرده کهی بجستی در هوا زان شناسی باد را گر آن سباست یا دبور است، این بیان آن خفاست. این بدن مانند آن شعر علم، فکر می را دم بدم، فکر کان از مشرق آید آن سباست، وان که از مغرب دبور با وباست. مشرق این باد فکرت دیگر است، مغرب این باد فکرت زان سر است، ما جماد است و بود شرقش جماد جان جان جان بود شرق فواد. شرق خورشیدی که شد باتن فروز قشر و عکس آن بود خورشید روز زان که چون مرده بود تن لحب پیش او نه روز بنماید نه شب ور نباشد آن چو این باشد تمام بی شب و بی روز دارد انتظام همچنان که چشم می بیند خواب بی مه و خورشید، ماه و آفتاب نوم ما چون شد اخل ای فلان زین برادر آن برادر را بدان ور بگویندد که هستان فرع این مشنو آن را ای مقلد بی یقین می خواب جانت وصف حال که به بیداری نبینی بیست سال در پی تعبیر آن تو عمرها میدوی سوی شهان با ها که بگو آن خواب را تعبیر چیست؟ فرع گفتن این چون این سر را سگیست. خواب آم است این و خود خواب خواس باشد اصل اجتباب و اختصاص. پیل باید تا چه خسپت او ستان خواب بیند خطه هندوستان. خر نبیند هیچ هندوستان به خواب. خرز هندوستان نکردست اغتراب جان همچون پیل باید نیک زفت تا بخواب او هند داند رفت تفت ذکر هندوستان کند پیل از طلب پس مصور گردد آن ذکرش به شب ازکر الله کار هر اغباش نیست ارجعی بر پای هر قلاش نیست لیک تو آیس مشو هم پیل باش نه پیلی در پی تبدیل باش کیمیا سازان گردون را ببین بشنو از میناگران هر دم تنین نقش بندانند در جو فلک کار سازانند بهر لی و لک گر نبینی خلق مشکین جیب را، شب شبکور این آسیب را. هردم آسیب است بر ادراک تو، نبت نو نو رسته بین از خاک تو. زین بود ابراهیم ادهم دیده خواب، بست هندستان دل را به هجاب. لاجرم زنجیرها را برداری، مملکت برهم زد و شد ناپدید. آن نشان دید هندوستان بود که جهد از خواب و دیوانه شود. می فشاند خاک بر تدبیرها، می دراند حلقه زنجیرها. آنچنان که گفت پیغمبر زنور که نشانش آن بود اندر صدور. که تجافی آرد از دار الغرور هم انابت آرد از دار سرور بهر شرح این حدیث مصطفی داستان بشنو ای یار صفا